الحمد لله رب العالمين صلی الله علی سیدنا و, و نبینا ابو القاسم محمد و اسلم الله و اهل اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارض روح وبر به لهن فدا به یاری خدا انشالله شاء الله بتوانیم یک مروری بر بحث حلقات داشته باشیم حلقه سوم بحث اولی که در بحث علم اصول وجود داره بحث موضوع علم اصول خب طبیعتاً در بحث‌های رایج هر علمی ما ابتدای کار نیاز داریم که بگیم اون علم موضوعش چیه و بعد احياناً اگر بخواهد موضوعش تعیین موضوعش تعیین کننده باشه و تأثیر گذار باشه در اون علم تقریف بکنیم انتظار ما از همون آغاز معلوم باشه در ابتدای علم اصول یه مقداری زحمت یک بحث های کلی هم که در همه علوم مورد نیاز هست یه مقداری اینجا جورش کشیده میشه و بحث میشه که آیا اصلا نیاز به موضوع داریم نیاز به موضوع نداریم این یک سوال. اگر نیاز به موضوع داریم موضوعش در چه سطحی باید باشه چگونه باید باشه اگر نیاز به موضوع نداریم چگونه باید تاین تا تکلیف بشه خب پس یه بحث های مشترکی ما در آغاز علم اصول داریم که بخشیش واقعا مشترکه بین همه علوم و محدود به اصول نیست و نتیجه‌ای که اینجا حاصل میشه اینجا استفاده باید بشه اما چون که جای دیگه یک علم مستقلی شاید چندان شک نگرفته بله می توانیم انتظار داشته باشیم که در مثلا فلسفه علم باید بحث بشه خب ما به این صورت نداشتیم عملا این بحث‌های ابتدایی یه مقداری ناظر به این مسئله هم هست خب حالا اینجا چگونه تنین تکلیف میشه؟ ما در آغاز بحث علم اصول که مرحوم شهیست سراخ داریم میبینیم یک تعریف رایج مورد اشاره قرار میگیره و اون این هست موضوع علم الاصول الادلت المشترک فل استدلال الفقهی پس الان اینجا این پیش فرض در این بحث وجود داره که ما نیاز به یک موضوعی داریم حالا که نیاز به موضوع داریم این موضوع از این قبیله از این قراره که یک ادله مشترکی داریم که در همه استطلال فقهی مورد بحث قرار باید بگیره من مثال ارز فرض کنیم اگر ما بخوایم در بحث سالات یه سری بحث ها رو داشته باشیم خب در بحث سلات یه سری بحث های اختصاصیه اما یه سری مباحث هم داریم که در همه جا مورد نیاز هست مثل ظهور آیا سیقه ام در دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر استحباب داره بر چی دلالت داره پس مورد بس این هست که ما باید از این نکته آغاز بکنیم ببخشید من یک اشتباهیم خب این یک بحثی. اما پیش از این که این موضوع مشخص بشه ما نیاز به تعریف داریم تعریف علم چیه من قفلتی کردم یه قدم رفتم جلو در تعریف علم چی گفته میشه قبل از این موضوع که با همین موضوع هم در, استمر... در ادامه این بحث مطرح هم میشه تعریف مشهور العلم بالقوائد الممهده لستمبات الحکم شرعی قواهه دیکی داریم که اینها زمین ساز هستن تمهید کنند و ممهد هستن برای استنبات حکم شرعی این تعریف مشهور خب مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه وارد نقد و بررسی این میشن و بعد نهایتا تعریفی که خودشون ارائه خواهند داد به عنوان تعریف مختار در آخرین بحث خواهد آمد خب یک نقد اینه که این تعریف شامل قواعد فقهی هم میشه چرا؟ چون که شا قواعد فقهی ممهد هستن برای استنباط حکم شرعی پاسخی که به این مسئله داده شده اینه که آقا مراد از حکم شرعی رو شما جور دیگه ببینید مراد از حکم شرعی جعل اونه اگر مراد حکم شرعی جعل باشه بر موضوع کلی مسئله رو ما میتوانیم حل کنیم چرا؟ چون که قاعده فقهی جعل و ما تنها نتایج می‌بینیم که اینجا نبا نتایجشکار داریم به تعبیر مرحوم شعیستد اما الملاحظت والاولا فتندفه و بانن المراد بالحکم شریع الازی جوافت تعریف جعل الحکم شریع الان موضوع هل کلی پس ما مراد از حکم شریع جعلشه جعل حکم شریعه بر موضوع کلی نتیجه چیه؟ این نقضی که شما میارید میگید که قاعده فقهی اینجا شامل این هم میشه شامل قواعد فقیه هم میشه این نقض برطرف میشه چرا؟ چون که خود قاعده فقهی به خود دیه خود جعلیست القاعده تول فقهی هیه به نفسها جلون من هاز القبیل بلا یستن تجمینا الا و زالک الجل و تفصیلاتو خب ازش چی استنبات میشه؟ همین تطویقات و مقایسه هم میفرمایند با قاعده اصولی که مایستن تجمنها جعلون خب نقض دوم چیه؟ این که شامل اصول این تعریف شامل اصول عملیه نمیشه شما دارید میفرماین الالم بالقواعد الممهدن لستنبات الحکم شرعی اینجا در اصول عملیه چه حکم استنبات میشه؟ حکم شرعی واقعا استنبات میشه؟ خب یا اینکه ما چیزی که به دست میاریم از طریق اصول عملیه اموری هستند که به درد رفع مشکل ما در مقام عمل میخوره خب مرحوم اخونده خراسانی آمدن این قید رو اضافه فرمودند که در واقع به منزله پذیرش این اشکال هست اولتی یونتها الائه ها فی مقامل عمل اگر این قید رو ما اضافه کنیم خب مشکل حل میشه اینجا عمل ملاحظت استانی فقه یجاب و الائه ها به اضافت قید نلت تعریف که این قید اگر این قید رو ما بیاریم خب شامل اصول عملیه میشه این تعریف شما شاملش نمی‌شد پاسخ مرحوم آیت الله خویی چیه که اینجا میفرمایند؟ ما استنباط رو اینجا که گفتیم لستنباتل حکم شرعی این مفهوم استنباط رو عام بگیریم و تفسیر بکنیم با تفسیر عام از مف از مفهوم از مفهوم استنباط نتیجه چی میشه که شامل اثبات تنجیزی که در واقع ما امارات رو نخواهیم به دست بیاریم و شامل اثبات تحذیری باشه نیاز نیست اون قیل مرحوم آخوند رو بیاریم بنابراین ما این رو این مفهوم استنباط رو که تعمیم بدیم این مشکل عدم شمولش نسبت به اصول عملی حل میشه به تعبیرشان و اخراب به تفسیر الاستنباد به معنای اثبات تنجیزی و تعذیری و هو اثباتون تشترک فی العدل و اصول عملی معن خب که اگه این تعبیر رو آم بگیریم میتوانه مشکل رو حل بکنه که فی الجمعه میتوانه این تعبیر مورد قبول مرحومه شایستات هم قرار بگیره اشکال سومی که به این تعریف مشهور وجود داره این که این علم بالقواعد الممهد الاستنباط الحکم شرعی علم به اصول علم به چیه؟ به قواعد آماده کننده زمینستاز برای استنباط حکم شرعی خب بقا این قواعد ممهده خیلی گسترده است تواند شامل خیلی چیزا باشه شام... میتوانه شامل مسائل لغوی باشه به انو یامل مسائل لغوی که ظهور کلمت سعید مثلا لدخول آفیستن به آتل خب پس خیلی مسائل لغوی هم وارد میشه شما که می قواعدی که ممهده اگه ما بخواهم به حکم شرعی برسیم باید تعین تکلیف بکنیم مسائل لغوی رو بگیم که مفهوم سعید در چی ظهور داره بعد بریم به دنبال. استنباد حکم شده این هم یه مقدمه یه دیگه همه مقدمات رو باید شامل بشه یک پاسخی رو برای این مسئله ما از مرحوم ناینی سراخ داریم ایشان یه قید میارن قید کبراوی قید کبرا میگن آقا مر... چه چیز از مسائل است ما و قید کبراویت رو به تعریف به تعریف اضافه میکنن ما و کبر را فی قیاس الاستنباط و الا فلالا لا تعبیر جموجورش ما هر مقدمه‌ای رو نمیگیم میگیم ما یک مقدمه‌ای میتوانه به درد ما در استنباط بخوره و اصولی حساب بشه که کبرا واقع بشه مایز قواعد فقهی با قواعد اصولی این است که قواعد فقهی همین که مورد استفاده قرار بگیره، سری ما رو به چی میرسانه به عمل میرسانه خود مکلفم میتونه این کارو بکنه. دیگه صغرا کبرى چیدن بیشتری نمیخوام. اما مسئله اصولی چیست؟ قاعده اصولی چیست؟ این وقتی که واقع میشه، کبران واقع میشه. در قیاسی که ما میخوام برای استنبات مسائل فقی به دست بیاریم بنابراین اگه کبرا واقع میشه خب مس... مسئله حله چجوری حله مسائل لغوی سقرا واقع میشن نست کبرا میگیم این لفظ سعید در این معنا ظهور دارد خب میشد سقرا کبرا این بود که اگر چون این ظهوری باشد این فلان حکر ما به دست میتوانیم بیا باریم. اما مرحوم شهیستت پاسخ میدن میگه ناقا این کافی نیستش اشکال قید کبرا کبراویت کافی کوبراوی نیست تقه کبرا فایده نداره همه مسائل اصولی که کبرا باقی شما اینو از یه طرف حل کردید اما ما از یه سری مسائل اصولی خبر داریم به شما میتوانیم نشان بدیم که کبرا باقی نمیشن درسته یه کمی مشکل حل میکنید اما یه مشکل دیگه ایجاد میکنه و یارد و علیها آن جمله تممنال این چوبی که من استفاده میکنم چاپی قدیمیه صفحه یازده صفح با این چاپ. خدمت شما چاپ چاپی 1972 سال قبل از انقلاب در داروی کتاب ال حالا ها ل که شما دارید ممکن فرق فرغ میکنم. و یارد و علی آن جمله تممنال قواعد الوثیل لا تغواو کبرع اذن کذوه رصی قتل امر فل وجود این کبرع واقع نمیشه این صخراست. و ظهور بعض الادوات فی الاموم او فی المفهوم این ظهور فلان عداد فلان مستقض از عداد در عموم خب یا در هر مفهوم دهیم فعی نام محتجن الا کبرا حجیت ظهور خود اونها نیاز بنده یک کبرای دیگه هستند. ولی ما بینیم که از همین مباحث در اصول داریم بحث میکنیم پس لزوما همه اونها کبروی نیستن فمن فرق بینه ها و بین المسائل لغویه این قید رو وردید خب اونه حل بکنید ولی دیدی یه سری مباحث رو شامل نمیشه و کزا که از مسئله تو اجتماعی الامر و نه فا این الامتنافی های و حقیق سقرال کبراد تاروز خب این پس پاسخ اشکال شهید صدر رزوان الله تعالو علیه پاسخ مرحوم آقای خویی میفرمایند که آقا ما یه قید دیگه به جای کبرویت میاریم میگیم که به جای قید کبرویت میگیم که قاعده اصولی کفایت بکنه نمیگیم صرفا تقع کبرا تقع کبرایی باشه که کفایت هم بکنه برای استنباد حکم شریع بدون زمینه کردن قاعده اصولی دیگه الان ما این اشکار رو دیدیم که باید یه چند مثال هم خدمت شما عرض کردیم دیدیم که باید یه کبرای دیگه تازه زمیمه بکنیم یه کبرای اصولی دیگه حجیت و ظهور یا بحث هر کبرای دیگه باید زمیمه بکنیم نه بیجاش میگیم که کفایت بکنه مازکر و سید و الاسطاد منظور آقای خویی من استبداد قید الكبرویه به صفت نخرا صفت نخرا چیه؟ و هیه انتکون القاعده وقتها کافیتاً به سنبات لکم شرعی کفایت قاعده اصولی برای سنبات حکم شرعی بدون زمین مکرده یه قاعده بلازم به قاعده تن. اصولیت نخرا فیخ رو زور کلمت سعید بله این مشکل حل میشه ولی ایشان دوتا ملاحظه اینجا دارند که اینجا ما دیگه نناشتیم یک ملاحظه اینه که خب اقا مراد شما از اینجایی که در اینجا فل جمله یا بل جمله میخواید این مسئله رو حل بکنید که حاضر ها کبرا لیست منال مواسل اصولی اتفاق علایه یه اشکالی برای اتفاق میکنم قبلش برای مسئله که خب باید کافی باشه اینجا مراد شما چیه که نه عدم احتیاج قاعدت الاسولیه الاخرام. یک پس اشکال اشکالشان به قید این عدم احتیاج اشکال یک بر عدم احتیاج یعنی چی شما میکید احتیاج نداشته باشه آیا در هیچ حالتی نیاز نباشه بهش فلای تحقیق حضاف القواعد الاسولیه اگه مراد شما این که در کل حالات مورد نیاز نیستیم واقع نمیشه اگه مراد از احتیاج اینه که فل جمله این به ادم ها احتیاج ولو فی حالت این واحده هم فهازا قد فی غیره ها اگه این که میگید فل جمله یه جای نیاز نباشه خب این با تعریف رو آم میکنه مثلا در لفظ سعید اونجا هم همین مسئله هست پس ادم احتیاج مطلق میگید یا فل جمله اگه مطلق میگید خب در فلای تقب فلایت تحقق و هاذا فل قواعد اصولیه این جوری نیست که بگیم هیچ نیازی نباشه نه فل جمله مورد نیاز است اگه میخوید بگید فل این که میگید احتیاج نباشه و این کفایت بکنه بدون زم زمیمه زم دیگه بدون ذمه یه قاعده اصولی دیگه این احتیاج به این ذمه زم زمیمه ذمه زم یه قاعده اصولی دیگه نباشه اگه فل جمله میگید خب این هم نه دوباره باعث میشه که تعریف عام بشه اشکال دوم این تعبیر که ایشان فرمودن لنهازل کبرا لیست من الموابص الاسولی للاتفاق علیها بعضی موارد رو مثل صیغه افعل و صیغه افعل فلوجوب و اینها رو میگن که نه نه که گفته اتفاقیه پس اشکال به اشکال دوم میکنن بر مسئله اد بر اتفاقی بودن بعضی اصولی بر اتفاقی بودن اصولی نبودن برخی موارد این هم قبول نمی کنن. زور و سیغت الانفل وجوب این یه اصولیتون و خلاصه این و الخلاف یه امساب با علال مسئلت اصولی اتفاق رو ما قبول ندام من تکایی گذینش می‌کنم که تفصیل پیدا نکنم خب پس ملاحظه سوم رو هم یعنی شمول مسائل لغوی رو هم ایشان میبینیم که بر تعریف مشهور وجود داره خب بقید تعریف مختار شما چیه؟ تعریف مختار ماینه، ما علم اصول حوال علم بل اناسر المشترکه یه عناصر مشترکه داریم که برای استنبات جعلن شرعی علم اصول چیکار میکنه؟ یه سر مش... مسائل مشترک دارید در همه جای اصول پراکن فقه پروکنده یه سری مسائل تخصصی هر باب. خب یه سری مسائل می‌دونم تخصصی اون‌ها رو ما باید بحث بکنیم حول علم بالعناصر المشتركه الاستنباط جعل شرعی خب این جعل نیازی هست ببینید مسائل قوائد فقهی ما داریم حالا برخی از اهل سنت یک اشکالی که شاید نیاز به توضیح اینجا داشته باشه در بحث 600 نگه نیومده. این که خب قوائد فقهی چیان اهل سنت بعضیاشون اه به قوائدی که مختصیه سری ابواب باشه میگن زوابط ذوابت شرعی به اون قوائدی که در کل فقه آورده میشه به اون میگن قوائد حالا یه سری دیگه هم از علمای اهل سنت و همینطور علما شویه به همین هم میگن قواعد فقی قواعد فقی کارش چیه؟ این که در مقام تطبیق خود مکلف هم میتوانه استفاده بکنه خب اینجا طبیعتا اون اشکالی که بحث قواعد شرعی و قواعد فقی بود اینجا باید مد نظر ایشان نباشه البلعناس و المشترک الاستنبات جلن شری. چه چجوری خارج میشه؟ اینکه اونها به درد استنبات نمیخوره اونها تطویق میکنه اون قواعد فقهی اما قواعد اصولی چی؟ اینا به درد استنبات میخوره فل جمله تقع کبرا درسته؟ این انصر مشترک بیدن برای استنباته ولی قواعد فقهی میتوانه برای استنبات نباشه در واقع اون پاسخ کلا بلبلای بحث گذشت با تفسیر عام از مفهوم استنباط اون از یه زاویه بحث بود اما یه زاویهش هم که اینجا نیاز داشت اشاره بشه که اشاره نشده اینکه به هر حال مایزی بین بحث قبل با اینجا وجود داشته باشه با یه صلواتی بریم محسه بعدی اللهم صل علیه این تعریف مختار 6صد بله تذکر خیلی به جایی بود فرمودی تعریف مختار شهیستد علم و الاسحف تعریف ان یقال علم و الاسول و علم به الاناصر المشتق جل شرعی این جل شرعی هم به صورت کلیه دیگه جل شرعی که به نحوه کلیه این المشترک هم دیگه چیه قیدی اوورده که مطلق نماشه و الهاز الاساس اساس المسئلت و لغوی هم که ظهور کلمت سعید لنه ها لا تشترک الا فی استنبات حال الحكم المتعلق به حاضر علمات فلات متبر اون سورا مشترکن پس اون قیده اون اشکال اول هم رفت شد خب موضوع دوم موضوع علم اصول خب این چه تعریفیه؟ تعریف فی که مورد نظر شهیستد هم هست عدل المشترکه فی الاستطلاد الفقهی که می در حلقه سابقه اینو بحث کردیم ول بحث یدور و لسوری یا دور و دائه من حوللت ها. خب ایشان میفرمایند که بعضی بزرگان چون که نتوانستن این را تصویر بکنن شروع به اشکال کردند و دم تمکن بعض محقم تصویر موضوع العلم الان نزیز د کنا که مورد نظرشان هم هست بعد نتیجه چی شده؟ این انوللد هایی که دارن چون که نتوانستن تصویر کنن شروع به اشکال کردند. چه اشکالهایی اشکال این شده که، عدم نیاز همه علوم به موضوع آه کی گفته همه علوم نیاز دارن موضوع داشته باشن ما انکار میکنیم مثلا دیگه اینجا اشاره نفرمودن فرض بگیریم علوم حقیقی خیلی بعضی های اینه مطرح میفرم علوم حقیقی نیاز به موضوع حقیقی دارن اما علوم اعتباری نیاز به موضوع ندارن این دیگه تعبیر رایجه که اینجا ذکر نشده پس همه علوم نیاز به موضوع ندارن بله این داخل کروشه میذاریم علوم حقیقی نیاز به موضوع دارند نه علوم اعتباری علوم اعتباری چون اعتباری هستن میتوانه یا چیز دیگه وحدت بخشش باشه خب یه مسئله که اینجا اشاره قراره دوسته تا ما مسئله ما کلن توی این بحث داریم ببینید اون بحثی که گفتم تا فلسفه علم باید بحث بشه اصلا نسبت این علوم با هم چیه؟ یک علم چه موقع علمه که تو اول بحث اصول معمولا زیاد مفصل بحث میشه به درد رشته های دیگه اولومه دیگه هم میخوره خب مسئله دوما مایز دوتا علم چیه اگر به موضوع بگیریم دوتا موضوع که متفاوت شدن خب علمم جدا میشه دیگه و اون وقت ما میبینیم یه سری موضوعات یه تداخلی هم دارن پس باید چه کار کنیم لذا بعضیا تمایل پیدا کردن بگن که نه مثلا به غرضه خب اشکال عدم نیاز همه علوم به موضوع اصلا کیوفت علوم نیاز به موضوع دارند اگر قبول کنیم اون وقت بحث تمایز علوم پیش میاد که باید وقت موضوع هر علمی جدا باشه خب پاسخ اول یک پاسخ این داده شده و و غازالکم بو زن للبحث فقدن لالو ضرورت وجود موضوع کل علم بدلیلین بعضی پاسخ دادن که البته من حالا لابلاد یک کمی جلقب کردم اشکالار که میارم پاسخشم مثلا بعد آوردم یه جا به جایی فلجمله پاسخ اول تمایز علوم علوم نیاز به تمایز دارند علوم نیاز به تمایز دارند و تمایز علوم به چی میتوانه باشه؟ به موضوع به موضوعات که موضوع کلیه پس هر علمی موضوع دارد این پاسخ اول نقد ایشان اینه که این شبیه مسادره است از دو ست صفحه بعد من میارم خب این شبیه مسادره است چرا؟ چون که تمایز به امر دیگه مثل غرص هم ممکن هست خب حسدخه دوم آقا اگر هم تمایز فرض کنیم مثلا به غرض باشه اینجا از یه قاعده اصولی واسه فلسفی استفاده میکنن میگن باشه اب نداره ما از راه دیگه استفاده میکنیم اگر هم تمایز به غرض باشه تمایز به موضوع نباشه ما دور میزنیم شما رو دوباره ثابت میکنیم که باید موضوع باشه داشته باشیم چه جوری میگه خب ایب نداره تمایز به قراز باشه الان دوتا علم قرازشون باید متفاوت باشه. چه موقع میتوانن اینها متمایز باشند اینجا نیاز به مؤثر واحد داره باشه قراز ولی قراز یه جوریه که میتوانیم بگیم این دوتا علم اگه بخوان واقعا جدا باشند مسئله قرزن بخواید مطرح کنید دوباره برمیگردیم به موضوع چرا چون که نیاز به مؤثر واحد دارن برای تمایز تمایز نیاز به مؤثر داره چرا به خاطر این قاعده فلسفی الواحد و لا رو الا من واحد حتی برعکسش هم داریم لا یسترو عنه الا الواحد هم داریم حالا ما این طرفش کار داریم خب لذا مسائل اینکه نیاز به محصر دارن چون که این قاعده وجود داره اگر مسائل بس چجوری می چجوری ادامه پیدا میکنه میگه چون که نیاز به محصر دارن به خاطر این قاعده فلسفی یه باره میفتیم میریم دست خودمون نیست توی این سرازیری میفتیم که میفتیم در دامن موضوعات و مسائل اون موضوع... یه قضیه کلی باید باشه با اون قضیه کلی و تفاوت داشته باشه قرازن خب اگه قرازن بخوان متفاوت باشن باید موضوعشان مسائلشان ذیل یه عنوان کلی باشن زیل من... لظام مسائل مختلف علوم که خودشان موضوع محمول دارن باید ذیل جامع واحد قرار بگیرن یعنی موضوعشان ذیل یه جامع خود قضایه غز... یه ای فلجمله موضوعات و مسائل همینطور یعنی چی؟ نتیجتا دوباره برگشتیم همون حرفی که شما خواستید نفیش کنید هر علمی موضوع داره پس از کجا آمدیم؟ رفتیم گفتیم باشه تمایز به غراز غراز میشه می به این لذا موضوع ها یه قضیه کلی و جامعه ان تماعیز بین العلم موضوع بالموضوع فلاودم موضوع لکل علم ازن لکه یحسن و تماعیز و انکانه بالغراز علا اساس انه لکل علم غرازن یختلف انه الغراز من الاللم آخر فهیس و انه من کل علم واحد والواحد الله استر الا من واحد فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذل كالقرض بان عبارتون ذهن تون برگردش و اینو خوندید ما کانت مسائل و لما مسائل العلم و متقایره مسائل مدن چجوری اون قرض میخواد وحدت بخش بشه فیست ایلم تکون المؤثر به ماهیه كثيره فی ذل كالقرض الواحد بل یعینا تکون مؤثرا تن به ماهیه مصادیق لامر واحد و حاضر یعنی فرض و قضیهت کلیت تکون به موضوعها جامعهتن بین موضوعات و به محمولها جامعهتن بین المحمولات البته نظریات دیگر هم در اینجا وجود داره قرره واحد باشه موضوع واحد باشه محمول واحد باشه نسبت بین موضوع و محمول واحد باشه اینم نظریات دیگه در بسه تمایز خب پاسخ اینجا فرمونه وقت اجیب انازالک مراد چیه؟ پاسخ آقای اطلاع خویه میگه آقا این الواحده که شما فرمودید واحد مراد چیه؟ ما تا واحد داریم واحد به شخص واحد به نک جامعه زایتیه و واحد به عنوان که جامعه انتظایه اینجا در این قاعده مراد از واحد چیه؟ واحده به شخص این مراده اما قرص چی؟ وحدت نوعی و عنوانی دارد پس آقا این که شما ازش استفاده کردیم موقعی به درد بخوره که این وحدت یکی یه چیز مراد باشه تو اون قاعده وحده به شخص مراده الواید و لاستر رو الامن واید اما تو این بحث ما قررز وحدت نوعی و عنوانی داره پاسخ دوم به چی میخوایم اشکال کنیم پس اشکال اصلی چی بود؟ اینکه میخواستن قبول نکنن که هی ال مشترکه فی الاستبدال فقهی که نظر مختار شریع صدرم هست نظر شهید صدرم بر همینه و مشهور خب این نظر مشهور میخوان بزنن کنار گفتن نیاز نداره یک پاسخ نیاز به تمایز داره پاسخ دادن پاسخ دوم تمایز به غرض حالا این این رو پاسخ دوم میدن می که آقا ما به درد همین حرفا هم مگه ما قبول کنیم به درد بعض علوم میخوره از جمله فق عدم ضرورت موضوع برای همه علوم بلکه یه جاهایی اثبات کردیم که موضوعش متنوع در فقه هم موضوع ترک داریم هم فعل هم موضوع وجود فعل داریم هم عدم داریم خب این چه جور وجودیه شما بین عدم و وجود چجوری میخواد یه مفهوم من... آم من... منتزع بکنید مثلا حالا اینجا اشار نکنن؟ فرض کن آقا شی شی دیگه نمیشه که خب اینجا پس شما اگه میخواد یه موضوعی جامعه هم انتظاب بکنید انتزاعی هم باشه از پیدا بکنید چجوره بین وجود و عدم چه موضوع مشترکی داریم بین ترک و فعل چه موضوعی آقا این فایده نداره پس هم ضرورت موضوع رو ما قبول نمی‌کنیم برای همه علوم بلکه یه جه اقامی دلیل شده مانند موضوع فرق. خب آقای شهیستر شما این حرف شما چیه؟ همین حرف مشهور یال عدلت المشترکه فل استدلال فقهی خب موضوع الموصول چیه؟ کارش چیه؟ میخواد در اون سر که بترشه؟ میخواد بگه آقا یه سری عدله مشترک داریم که به درد استدلال فقهی میخوره ما ادله که داریم تو همه ابواب فقه، تو همه مسائل، تو موضوعات فیل جمله اینا رو میتوانیم استفاده بکنیم البته نه اینکه لزوما همه جا همون ادله بیا، مراد که این نیست قتن. خب و على هذا الاساس خب اینم جمع بندیم موضوع سوم یه صلوات دیگه برامد بفرماید. اللهم صل على محمد وعاله محمد وعجل خب موضوع بحث سوم جا صفحه 17 الحکم الشرعی و, و تقسیمات یه بحث کلی من عرض کنم خارج از بحث در تا اگر کتاب‌های اصولی شیعه و سنی رو یک مروری بکنید فهرستاشون رو با هم مقایسه بکنید می‌بینید یه سری کتاب‌ها به ویژه در فضای اهل سنت بعضیشون آمدن بعد از این بحث‌های مقدماتی هم اول کار در تار... تاریخ علم خیلی مهمه آمدن بحث حکم رو گذاشتن حقیقت حکم حکم چیه؟ حق... بعد تعریفش چیه؟ حقیقتش چیه؟ بعد اقسامش چیه؟ اما در کتاب رایج الام مثلا کتاب کفایت و که محور بحثه درس خارجم هست و قبلش مثلا رسائل اینطور نبوده البته بعضی کتاب ها درسی قبلی یه ورود بهتری داشتن شما مثلا تعریف حکم وضعی رو کجا باید پیدا کنید تو بحث استصحاب. من همینه پژویش کار پژویش که همینا در به پژویشی که داشتم شما می بحث استصحاب تعریف حکم وضعی است اقسام حکم وضعی است دعواهایی که هست خب ولی در کتاب رو موجود الان خیلی اینجوری نیست شاید صد یه سیاقتی تقویمی جدیدی هم دادن که این از این جهت خوبه که هم اول کار رفتن سراغ حکم شرعی در های فقهی هم اینطور نمیدان خیلی اصلاً خود تعریف وکوشهی حالا اینجا دیگه بحثش نکردن اول اینجا تقسیم و بعضی مباحث رو اونایی که حالا در حلقه ثانی و اینها آوردهن اینجا فلجون فاکتور گرفتن میخواستن یه سطح بالاتری بحث کنم در که بعضی های قدیمی خودمون هم اینطوری بوده خب تقسیمات مختلفی داریم یک تقسیم تقسیم حکم به وضعی و تقسیم به حکم تکلیفی اینو هم عرض از جهت تاریخی در تمرکز مثلا تو حکم وظیفه حرف از کتب قدمای اهل سنت و بعد کتب شیعه که نگاه کنید اول میان میگن حکم وظیفه چند تا است، مصداقش که میگن، اول چهار تا میگن، جزئیات، شرطیت و اینا. بعد جلوتر بعضی گفتن پشتا تا، بعضی گفتن هفتا تا. بعد این اواخر در تعاریف علمای شیعه که من پیدا کردم اشاره میکنم هر چی که غیر تکلیفی است غیر احکام تکلیفی خمسست میشه حکم وضعی که پس خیلی میتوانه دایرش گسترده تر باشه که اینجا دیگه محل این در اینجا اشاره نشده ولی این جمعه بحث داشته بود. یه بحث مقدماتی هم اینجا بگیم که ایشان اشاره نفرمودن این انواع آرا در حکم وضعی بعضی ها گفتن حکم همه احکام وضعی انتزائی‌اند یعنی چی؟ قابل جعل مستقل نیستند نظر شیخ شیخ انصاری برخی دیگه گفتن برخی همه احکام وضعی جعل مستقل دارند نظریه سوم تفصیل که مثلا بحث مرحوم اخوند که ببینید اینطوریه تفصیل مثل آخند آخند خراسان وقتی میگیم اخوند یعنی مرحوم اخوند خراسان تو بحث فلسفه آخند که میگن کی میگن مرحوم ملاصدر را خب تو بحث وضع که شما برید نگاه کنید تفصیل میدن میگن بعضیش قابل جعل مستقل هستن بعضیش قابل جعل مستقیم نیستند نتیجه چیه برخی قابل جعل مستقل هستند برخی, اح... برخی احکام وضعی منظورمان اح... برخی احکام وضعی قابل جعل مستقل توسط شاره نیستند برخی هم و صرفا برخی قابلیت هر دو را دارند مثال چی مانند خلافت ولایت وکالت و برخی مفاهیم مشابه این نکته خارج از بحثم این مثال بحث خیلی مهمی این مثال دیگ حواستون باشه ولایت مثلا ولایت فقی، ولایت امام، حکم وضعیه علمای دیگه هم اشاره کردن در حواشی بس کفایم، علمای دیگه هم میگن خود کفایم داره. خب اینم این نظر. حالا بحث مرحوم چی کار کردن؟ ایشان دیگه اینجا اشاره نکردن این دو تا نظر در عرض هم هست. مستقیم رفتن، گفتن که اقسام حکم وضعی دو قسم کردن. یکی احکام غیر انتظایی، این مفهوم غیر در تف مفهومش نیست مفهوم مقابل این تعبیر که اینجا وجود داره از تعبیر ایشان اینه ماکانه واقعا موضوع للحکم مال اینجا داخل کروشه میاریم ماکانه واقعا موضوع للحکم تکلیفی مثل زوجیت و ملکیت خودش موضوع حکم تکلیفیه قسم دوم ماکانه منتظه آنل حکم تکلیفی پس ببینید مبتنی بر اون انواع آرا در حکم وضعیه خب پس ایشان آمدن دو قسمش کردن بعضیاش موضوع حکم دیگه قرار میگه زوجیت میفرمان که زوجیه الواقع موضوع لوجوب الانفاق هر جا که زوجیت بود وجوب انفاق میاد ملکیت موضوع قرار میگیره برای یک حکم دیگه واسه حرمت ملکه الواقع موضوع له حرمت تصرف الغير فلمال بدون اذن مالک این حکم وضعی چه بگیم جعل مستقل داره نداره به هر حال موضوع قرار میگیره برای یک حکم تکلیفی دیگه یا یک حکم تکلیفی البته ممکنه واسه با واسطه هم قرار بگیرم این در زمین تذکرام بدم تذکر تکمیلی وقتی گفتیم خلافت ولایت و اینا حکم وضعی هم مثلا از و نس با این هم یا جوائز جل جایزه جل مجازات مثلا توسط قاضی اونها هم حکم تکلیفی هم با اون تعریفی که گفتم این اواخر علم فرمودن که هرچی غیر حکم تکلیفی میشه وضعی خب پس یه تفاوت دوگانه توضیح که به میارن چیه اینجا, اینجا که ماکان واقعا موضوعن لحکم تکلیفی اینجا مجهول چگونه است؟ جل مستقل مجهول مستقله چرا توضیح دادن؟ زیرا اگه بخوا این موضوع واقع بشه، الان ما گفتیم موضوع واقع میشه. درسته؟ مو... در تعبیر اصلا آوردیم، در تعریف کنیم موضوع حکم تکلیفی قرار می خب از کجا فهمیدیم حکم مستقل؟ ایشون میفرماین همین که ما گفتیم موضوعیت داره موضوع موضوع موضوع واقع میشه موضوع واقع شدن مقتضی سبقت بر حکمه چه موقعه اول بعد این موضوع وجود داشته باشه حکم تکلیفی بیام اما انتظارش چی انتظارش مقتضی تاخرشه بفرمایید خب ببینید ایشان الان میخواد بگه که حکمه نه ببینید نمیخواد بگه به درد نمیخوره. حالا شبهه رو من عرض کنم. ول اولاً مقدمه میگه ولایم اولاً میگه که بعضی شک کردن و شبهه کردن که اشاره می کنیم. حالا میخواید این قسمت شبهه رو هم توجه بکنید. بعضی آمدن شبه کردن که در واقع یه جوری ممکنه بیان دیگه یه سرمایش شما شاید باشه شبه کردن که بدون جعل حکم تکلیفی اصلا لغوه چرا بحث مستقل میکنیم؟ پس جعل استقلالی ندارد حکم تکلیفی از ابتدا بر خود موضوع جل شده یه جوری بگیم همزمان به تعبیر ایشان ای ای حالا تعبیر رو پیدا کنم فلای ممکن ایجر حالا برش کنم پیدا نشد. پس جل استقلاعی نداره چرا؟ چون که جلش لغوه بنابراین ایشان میان میگنه جهل مستقل داره این شفره توجه نکنید چرا؟ چون که همی که شما میخواید بگید موضوع باشه یه حکمی بیا سر این موضوع اول باید موضوعی وجود داشته باشه اول باید کلاسی باشه تا بگیم اصطور شاگرد بیان بنابراین جلش اول باید مستقل انجام بگیره تو این موضوع اینجا مجعول مستقل باشد تا و انتظایش چی انتظایش اگر بخوایم بگیم انتظایی باشه انتزا متفره بر اینه که اول باش اون حکم تکلیفی بعد ما انتزا بکنیم اینم تکمیل عرض می‌کنم تو نظریه که گفتن جلع مستقل لیست انتظایان انتظایان از چی انتظایان از احکام تکلیفی این مثالا برجسته بکنم اینجا شفاف میشه مثلا یه موقع شما طبق نظر شیخ که گفتن بعضی تفصیلیه مثلا شاره آمده گفته اتی الله و رسول این حکم تکلیفیه که جل شده شما گفتیم قابل انتظاه شما از این اتی الله یه حکم دیگه هم می میکنید اون چیه؟ حکم ولایت میگیم اه پس خدا فرموده از او اطاعت کنید پس اون ولایت داره که اینجوری پس این انتظاهیه اما خود ولایت هم قابل جل مستقل هست پس قابلیت هر دو رو داره خب اینجا انتظا به این معناست. هست اگه بخوایم انتظا بکنیم یعنی چی؟ انتظایش از حکم تکلیفی مختصی تأخور آزن هست اول باید حکم ت... اه... تکلیفی باشه بعد ما انتظار کنیم حالا فرمای شما الان حل شدید اگر بخواه انتظایی باشه ایشان میگه نه دیگه انتظایی نیست چرا؟ چون که همین که شما میگین موضوع واقع میشه اول پس باید باشه تا ما جعل مستقل داشته باشه اول باشه تا بعد موضوع واقع باشه ولی هنوز این موضوع محقق نیست چگونه موضوع قرار بگیره حالا فرمان شما حل شد خب خیلی این شد اگه حل نشد بفرماهت بباره تقریر دیگه بکنید توضیح بدیم خب پاسخ به این شب شبه. شبه چی بود که آقا این لغوه بدون جعل حکم تکلیفی این جعل حکم وضعی به نحوه مستقل لغوه است آقا قرار موضوع قرار بگیره؟ بله خب اگه قرار موضوع قرار بگیره فرض کنه همینجور جعلش بکنه آمد و بعد جعلی نشد یا هنوز جل نشد خب پس همین الان که جل شد هنوز خب تکلیفی که نیواد پس الان لغوه ایشون میفرمائند آقا از این حرفا نزنید این احکام وزعی احکامی عقلایی ان وقتی که عقلایی هستن یعنی چی یعنی اون کسی که این رو جل میکنه یه قرضی داره اینجا قرزش یه دو تا تعبیرشون به کار بردن تسهیل و تنظیم احکام تکلیفی این به درد این میخوره که احکام تکلیفی یه سیاقتی بهش بده تسهیل بکنه جلشه اولین رو جل میکنه بعد رتبتا اون رو میکنه و بعد اون احکام وضعی یکمی شفاف میشه ولی جواب انهازه شبه انه الاحکام الوضعی علیتی تاود الالقسم الاول یعنی همین قسم کلمه غیر انتظایی ذات و جزور اعتباراتون ذات و جزورن اقلایه ریشه های اقلایی داره خب اقلایه قرس چیه؟ تنظیم و لحکام تکلیبه و تسهیل و سیاقت ها میخواییم نه سیاقت بدیم نه شک بدیم سامانش بدیم از تشریه فلا تکون و لغون خب پس این قسم اول که یک شبهی و پاسخی درش وجود داشته تو قسم دوم که انتظایی هستند ما کان منتزن ان الحكم تکلیفی اینجا یعنی چی میگه وقتی میگه انتظایی یعنی قابلیت جعل مستقل ندارد این قسم قابل ام، امکان قابلیت برای جعل مستقل ندارد یعنی چی یعنی ببینید شبیه اون جمله که میگه جل... فلسفه میگن جلل مشمشت همشمشتن همون اول اینجوریه اینم هم همی ببینید ایشان میفرمواند که مثلا اگر شاره یه چیزی رو بخواد جز قرار بده به اون کلش که امر میکنه این جزئیت ازش در میام. که جزئیت سورل الواجب همین که اون واجب جل کرد شما میفهمید که این جزئه اگه کل رو قرار نده، اصلا جزیت بیمعناست موقع این جز جز از که کل جعل شده باشد همش باید با هم بیان وقت شما میگه آقا این جزئه. اگه کلش رو با هم نیاره اصلا این جز نمیتوانه جز حساب بشه خب و مثل شرطیت جزئیات و شرطیت و زوال للوجوب المجعول لسلات زهر اینجا صلات زور جل شده در اون وقت زوال همین که جل شد و میگه ها الان شرطه پس یه جور خواست جل میکنه شما میفهمی شرطه در واقع ایشان وارد اون شقه سربامی که قابل بحث تفصیل بود منحوم اخوند برده یه جوری شاید بگیم نشده اون مواردگی قابل جل دوگانه هم میتوانه مثل ولایت هم جل مستقل باشه اینجا جل تو من یعنی جلد مستقله اگر کسی اینا رو قبول نکنه نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که بگیم آقا اونا رو باید توجیه بکنه این جلد و حاکمنه باید توجیه کنه من اینم تذکر ارز کنم شیخ انصاری که میگه همه احکام وضعیان قابلیت جلد مستقل ندارن وقتی اگه بخواه برسه مثلا به این جلد که حاکمن اینو باید قابلتن توجیه دیگه یا یه تعبیر دیگه ها به کار بگه آقا من ولایت قبول ندارم ولایت قبول ندارم به چه معنا به این که جله مستقل ندارد همون فقط الله اللهه اتی الرسوله اگرم گفت اینی جل تو مرادش همونه بعد یه توجیه بکنه لذا اینم یه تفسیر برای اونجا که بسته شیخانساریشون یه کمی ادله نقد ولایت فقید دارن یه معناش هم ممکنه این باشه چرا؟ چون که همه احکام وزعی رو که اگر بگیم ولات رو وزعی هم ایشان هم برفرض بدانه قابلیت جعل مستقل نداره ممکنه مرادشان این باشه خب مرحوم شفیعت چی این جلان وارد تفصیل هستن کننم شاید گردنشان بذاریم که مستاخوند این تفصیله رو قبول ندارن که بعضی‌ها جعل مستقل دارن بعضیش قابل جعل نیست اینو میگه ولی این شیخ که بلکه قابلیت هر دو رو دارن کنده این جلان کنار گذاشته شده خب یه تیکه دیگه هم ما اینجا الان تو بحث مرحوم ایشان تأکید میکنن هم میگن پس جل مستقل نداره هم میگن انتظایه اما این انتظایی اینه بیاریم جدا این احکام انتظایی واقعی هستند در واقع اینجور بگیم این انتظا این انتظار واقعی است با چه توضیح؟ میگن وعای واقع آن عالم در چه واقع شما که میگید واقعیه این واقع بودنش کجاست میگه در خود عالم جعل لذا قابل ایجاد با جعل اعتباری و تشریعی نیست تعبیر رو اگر پیدا کنم ایشان میگن یک فی و فی تکلیفی فی انتظان عنوان الجزئیه و بدونهی لایم کنن تتحقق الجزئیه للواجب به مجرد انشاء ها و جعل ها پس این نقطه اول که آقا قابل جعل مستقیم نیست این جزئیه و به کلمت نخرا ان جزئیه للواجب من امور الانتظایی الواقعیه انتظای واقعی پس ما انتظای غیرواقعی هم داریم بله تو بحث فلسفی انتظای انتظا دیگه هم می توان داشته باشیم بیا. و این کان وقا... و واقع ها و آلم جلل وجوب همون که جلل وجوب میکنه این عالم این واقعی بودنش همونجاز. همون جاست همون عالم جلل و این کان واقع ها و آلم و جلل وجوب فلا فرقه حالا که جوره و... این انتظایی بودنش واقعی شد یه نتیجه دیگه داره نتیجه چیه شبیه اون مرکبات خارجی میشه چ تو مرکات جون جزئاتشان واقعی اینم شبیه اونا فلا فرق بین و بین جز للمررکات خارجی هم من حیث وکن ها همرا انتضایان هم هم. و این اختفت جزیات الجزئ... جزئیتان فی آ واقع و منچل انتظار و مادامت جزئی امرا واقع هم. فلا همکن ایجاد ها به جلب تشریف و اعتباری قبل از این بگیم شبیه، جزئیات در مرکبات خارجی خب اینم یه بحث بحث بعدی پس الان بحث ما بحث الاخکام و شریع و تقسیمات و ها. یکی اقسام حکم وضعی بود این بحث تمام شد یه بحث بسیار مهم می داریم شمول الحکم للعالمه و جایلی سلاوات دیگه مرحمت بفرمایید. اللهم سلام عالم ما ماه مبارکه انشالله که در مقدمه باشه همه کارهای ما مخلصا لله باشه در این شب هم که پیش رو داریم شب 23 هم انشالله همه توفیقات برای ما رقم بخوره انشالله همه توفیقات همراه با اخلاص برای ما انشالله به تقدیر الهی در بیا و ما انشالله اون احکامی که جاهلانه رایت نکردیم قاسرن و مقصرن انشالله خدا اونها رو بر ما ببخشه. شمول حکم برای عالم و جاهل یه داریم این احکام برای کیه؟ برای فقط عالم یا جاهل هست حالا یه بس مستقلی هم داریم جایی دیگه که شروط تکلیف چیه؟ عقل و قدرت و علم و اینا سر جای خودش اینجا الان بحث چیه؟ عالم و جاهله خب اگر شرایط تکلیف یکیش علمه یعنی چی؟ مگه شما نمیگه شرط تکلیفی نه؟ خب اونجا میگیم شرط تنجزه برخالف مثلا قدرت قدرت یا یکی... سنخ دیگر شرطه میشه شرط تنجز خب وقا خب یعنی چی؟ یعنی به هر حال این آدم جاهل عالم که معلومه تکلیف هست براش جاهل چی؟ تکلیف داره یا نداره؟ میفرماهند داره با چه دلیلی؟ اشاره خیلی یکی دو خطه میفرمایند اطلاقات عدل احکام ول احکام تشریه تکلیفیه و وضعیه احکام تکلیفه از همه عدل در واقع اینجا شموله ها چه وضعی چه تکلیفی شامل همه از فلغالب عل... آلمه بله خود ول بل جاهله على سوا ولا اصو بله خب خوب وقد اده یا نلخبار دال لازال که احکام این عدل مستفیز این روایت اخبار مستفیز هم هستن اینا اطلاق دارن چه عالم چه جال قیدی نخورده به جاهل خب این حالا بحث نکته مهمی نیستش نکته بسیار مهم این بحث دومه استحاله خب من رو از یک جایی ما سابقه رو اول بگیم مرحوم علامه هلی در بحث اینجا الان لابلای بحث با یه بحث جدیدی هم باسم تصویب یواش یواش داریم مواجه پس اگر ما تصویب هم به به, بحث، به درد بحث عالم و جاهل میخوره هم به برد حکم ظاهری و واقعی میخوره که در ادامه بحث بهش میرسیم مرحوم علامه در رد نظر مصوبه فلجمره به این دلیل دوم است، استناد کردن دلیل دوم چیه؟ فرمودن آقا اصلا بالاتر نه تنها عدل نفس. اصلا نمی توان گفت که حکم فقط منحصر به عالمه اصلا محاله حتما شامل جاهلم هست اصلا محاله استحاله داره که فقط شامل عالم باشه چرا؟ چون که ما اگر بخواییم علم رو اگر بخواییم بگیم جاهل درش نیست این شامل جاهل این حکم شامل جاهل نیست جو... یعنی چی یعنی احکام قید خوردن به عالم کیفت آقا احکام قید خوردن به علم به اخذ علم اخذ علم در احکام نشده ادله احکام نگفته که فقط این احکام فقط مال عالم قیدی نداره عامه ولی این حرف اگر بخوایم بزنیم بگیم که اختصاص به عالم داشته باشه مقتضی این قیده پس اگر بخوایم این رو قبول بکنیم زیرا اختصاص مزبور م... یعنی چی یعنی اخذ علم به حق شده در موضوعش خب بشه حالا چه عیبی داره میگه ها این مستلزم اینه که مستلزم تاخر رتبیه حاکم از علم به خودش بشه درسته یعنی که هنوز این خود حکم شک نگرفته قید بخوره به این که باید به خودش علم داشته باشیم یه جوری دور پیش میام خب ازشکال شهسته میگه میگن آقا استحال اینجوری که شما دارید تغییر میکنی استحاله نداره اخذ به علم من یکی تا تغییرش انداخته میزد خلوت بشه اخذ علم به جل استحاله نداره اونی که استحاله داره چیه؟ اخذ علم به حکم مجعول استحاله داره که اگر عبارت رو پیدا کنم تعبیری اینه برای که شلوغ نشه من اون اضافه شو انداختم و قدیوبر هنالوها زلقایده انطریق استحاله انطریق اثبات استحاله اختصاص آلم عالم رو کار نداریم ولیکن قد من ربنا فی الحلقت سابقه ان المستحیل چیه؟ من اینه جابجا کردم اول دوم موردم اونی که مستحیل چیه؟ هو و اخذ العلم بالحکم المجعول فی موضوع اخذ علم به حکم اخذ علم به حکم المجعول فی موضوعه لا اخذ بلجل بالجل في موضوع الحكم المجهول فی خلاصه این که آقا اینجور که شما دارید میگید نیست اونی که گیر داره اخذ علم به حکم مجهول در موضوعشه اما اخذ علم به جل این چی این محال نیست اخذ علم به جل لا اخذ علم بالجل فی موضوع الحكم المجهول فی اینجا اشکالی نداره. بعد یه نتیجه هم پسترره پس این بحث اووردن فل جمله ب بله. مثلا شبیه بله درست حالتا اونجا اصلا یه چیز دیگه است اینجا باز علمه هستش بله درست, درست. بله. بله شبیه تقریبا مقداری. به نظرم اینطور میرس می حالا اگر درست مثلا منظور من درست متوجه شدم ولی به نظرم ببینید اخذ علمه به جل فی موضوع حکمه مجعول فی این استحاله نداره اخذ به علم اخذ علم به جل گه این حکم بدان اگه بدانی ای که این جل شده یعنی یه چیز مذرری نیست که حالت دور رو میخوان بردارن بلکه اونی که اخذ علم به جل علم به حکم مجعول المستقیل و اخذ العلم به حکم فی موضوعه این استحاله داره خب نمیدم حل شد حالا بیان نمیدم دیگه چه تعبیری به کار ببریم من به نظر اون بحث استده کمی شبیه چون موضوع حالا علم با اون فرق میکنه شبیه. ایشان اه... یه باره شیفت میکنن در ادامه بحث به بحث تصویب در ادامه یه تیتر جدایی نزدن میگن فر... می و یوترتب علامات زکرنا وارد بحث تصویب میشن خب اینجا اه... میگن نتیجه این شمولی که ما گفتیم چیه خطا من جمع جورش کردم خطا پذیری علم یعنی چی؟ یعنی نظریه مصببه نظریه مصببه چیه؟ تقریران مختلفی برای گفته میشه نظریه خب ببخشید برای تصویب تصویب اشعری دارین تصویب معتزله دارین بعضی تسویبایی هم که لا بحث علمای شیعه مطرح میشه شی. میگن که آقای حرف شما عملاً میشه یه جوری یه مقدار شکلی خفیفتره که دیگه اینجا محل بحث فیل جمله قرار نگرفته نظر علمای شیعه چیه اینکه آقا حکم حکم واقعیه جل جل واقعی احکام الله از طرف خدای متعال جعل شدن خب حالا من جاهل باشم چرا هست ما نیاز داریم به بحث این چون که یه جاهای در واقع پیشفرض بحث ما اینه احکام واقع احکام در حق عالمین عالمان و جاهلان مساوی سوال در صورت عدم مطابقت عمل با احکام مذبور تکلیف چیست؟ اینجا آمدیم یه سری به ویژه در احکام ظاهری اون آیا تکلیف چیست به چه معنا؟ یعنی اینکه آیا علم خدا جه گو اون شعره که چیز میگه میگه من م... نعوذ بالله می میخوردن من حق اول میدونه گر نخورم علم خدا جه و این جوریه خب من الان عمل کردم به یه چیزی خلاف حکم الله خب آیا میشه بگیم خلافه بله چرا؟ چون یه حکم واقعی داریم حکم میتواند مخالف باشد حکم عمل میتواند مخالف واقع باشد هم عمل و هم علم ما علم چی؟ علم هم میتواند علم ما میتواند جهل باشد و غیر مطابق با واقع یکی عمله یکی علم ما الان فل جمله هر دو کار داریم خب نتیجه بحث چیه این که اگر ما قائل به این شمول باشیم همین که میتواند جهل باشد یعنی چی ما خطاپذیری علم قبول کردیم این میشه نظری مخطه شیعه که جزء مخطه هست میفرماند که علم ما خطاست کجا حالا علم جاهل مردم کار نداریم الان در احکام علم ما چه کی... که کی... سی رو بصفه کنیم بحث فوقه ها علم فقیه میتوانه جل باشد یه جاهایی خب مطابق در نمیاد. جای جایی مطابق در می آید خدایی قبول میکنه یا نه اون یه بحثی دیگه است. نحوه اعتبارش یه چیز دیگه است. ولی واقعا الان این یا نه میگیم جهله خب پس اینی که داریم چیه تحیم تکلیف باید بکنیم نظر مخطعه اینه که این علم خطاپذیره اما مسببه مصبب... چی خطاپذیر نمیدانن بلکه میگن چی بلکه علم در واقع حکم واقعی تغییر میکند البته یه توضیح اینجا نیاز داره خارج از بحثی کتاب چون که به اصلا یه تفاوتی با مافل جمله داره یه جاهایش این حکمه تغییر میکنه اما یه جاهایش میدونید این تصویب اونها اصلا معناش عوض میشه میدونید چرا؟ چون که اونها میگن آقا مدعی که آقا اگه کتاب و سنتی بود ما بهش تمسط میکنیم اگه نبود پس معلومش اصلا حکمی نیست این حرف هم حرف جدید نیست همون خلف های اول صحابه هم بعد از پیامبر همین حرف میزنن برخلاف احل بید امام علی علی السلام همین که چی پیدا نمیکردن میگو مخوا آیه هست نیست خبری روایتی هست به من بگید حالا یه جایی که عملم نمیکردن کار نداریم اما اینطوری مدعی میگن آقا کتاب سنتی نیست وقتی که نیست یعنی چی؟ یعنی قضیه لکل کل این حکمون رو قبول ندارن هرچین این جمله در میانند سنت هم هست ولی اونجا میشه معناش اضافی میشه نسبی میشه ولی نتیجه این خواهد بود که یه جایی اصلا حکم اللهی نیست خب اگه اونه در نظر میگه اون معنی تصویب اصلا مثل میدونید چیه این که یه کارشناسی میگه قیمت برای ساختمان میذاره کارشناس دوبامی قیمت دیگه میذاره خود مردم هر کدوم یه قیمت، قیمت یه چیز واقعی نیست. من دل بخواه منه که اینجا رو میلیارد بفروشم یا دو میلیارد بفروشم. کارشناس میای حتی وسط می‌ذاره. میگه این بغل دستی شما یک توم فرو، اون طرفی یک و من میذارم یک و صد. پس این ساختمان عظیمی یک میلیارد 1 و بفروشه. اینجا اصلاً حکمی نبا، واقعیتی نب. قیمت خاص مردم. خب حرف اونم که کمی شبیه می این میشه. اینالا داخل کروشه. اما اونی که علو محل مورد نظر شای سطره ای این که میفرمای آقا برخلاف نظر مختی که ما بشیم نتیجه حرف اینا چیه اصلا بحث خطاپذیری نیست که ما بگیم حکمیه حکم ظاهری خلاف واقع در بیاید نه اصلا حکم واقعی تغییر می کند خب این یک بحث خب آقا چند جور تصویب بالا داریم یه تصویب کلی این تیتر گذاری نکردن ولی لا به لای در البته یک تصویر مطلق این اسمش من میذارم تصویر مطلق تعبیرشان نیست حالا بعضی ها میگن تصویر مثلا اشعری اینطوری بگیم یا تصویر اشاعره که البته در کتابه سنی هم شما ببینید یه جور نسبت داده شده بهش یه مقدار شفاف هم نیست اصلا از جهت تاریخی نفی اساس همه احکام همین که گفتیم یعنی احکام اگر نظر شما فتوا تغییر کرد اون حکم هم تغییر میکنه. اگه اگر دوتا مفتی دو تا فتوا دادن دوتا تا میشه واقعا پس نفی اساس همه احکامه برخلاف نظر خب این نقدش چیه وازุลبطانه چرا احکام برای اخبار و احکام واقعی اومدن زور اخبار عرف چی می‌فهمه میفهم که آقا احکام واقعی دارن جعل میکنن. خب اینا خیلی کتاب اشاره اشارهوار فرمودن نظریه دوم تسویب خفیف که ایشا میگه ہونا صورت ہونا که صورتو مخففاله تسویب معناش شیه. اینی که میگن آح احکام واقعی قبول داریم اما مقیید پس اون قبلی احکام واقعی رو نفی میکرد همه احکام واقعی رو نفی می‌کرد این میگه احکام واقعی قبول داریم اما مقیید به عدم قیام حجت بر خلاف آنهاست و الا اگر حجت برخلاف اون احکام واقعی بشه تبدل حکم واقعی میشه یعنی ابتداعا حکم واقعی وجود داره ولی اگر شما یه چیز دیگه فهمیدید در حق شما خدا یه حکم جدید درست میکنه ولیکن ها مقایدتون پس معده ان الله تعالی له احکام واقعی صحابت اش... اش... اش... هم این اساس برخلاف اشاعری حالا کل اشاعرم نگیم اون میگه که حکم واقعی وجود نداره هر چی شما صد صد ذهنت به اون رسید میشه در بحث فل... داخل کروشه در بحث فلسفی اخلاق نظری داریم گفته میشه چی گفته میشه امرون ببخشید یه بحث تو بحث کلام داریم میگیم حسن و قبح شرعی یعنی چی یعنی قبلش هیچ مسئله مقصده واقعی ذاتی وجود نداره این برای توضیح نظریه تسفیب خب عدلی قائل به این هستن که ما حسن وقفه ذاتی داریم مصلحت مقصده واقعی وجود داره حسن وقفه ذاتی بعد از اینکه ذاتی وجود داشت عقل میتونه فل جمله بفهمه حسن وقفه عقلی نمیگه بل حوا را بفهم ما فل جمله بعد حسن وقفه شرعی مقابل این دوتا قرار میگیره میگن اصلا حسن وقفه این نیست این تعبیر دیگه نفی اساس همه احکام واقعی داخل کروشه میذاریم نفعی حسن و قبه ذاتی و عقلی به طبعش عقلی دیگه اگه ذاتی نموشه عقلی هم نیست میشه چیه نظریه حسن و قبه شرعی توی فلسفه اخلاق به این چی میگن نظریه امر الهی نظر عمل الهی به تعبیر حافظ که شاگرد قاضی از دینه جیوده میگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت احتمالا حافظم گرایشه اشری داره تعبیر قشنگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت پس این میگه واقعیتی وجود نداره حسن و واقعاً واقعا وجود نداره هرچی که ما الحسن و ما حسن اشاره. شاره پس پس واقعا چی وجود نداره فقط اعتبار شارعه پس نفی کام واقعی به این معنا یعنی واقعیتی احکام وجود داره ولی واقعیتی وجود نداره این مقداری این اینجا وجود این توضیح نیومده ممکنه بدفهمی بشه خب معتزله خصوص ذاتی قبول دارن البته اینم داخل پرانتز بگم ماتریدیه بین معتزله و عدلیه و اشاره هستن یه مقدار بین این اما معتزله که اساس احکام واقعی قبول دارن احساس و ذاتی قبول دارن این تعبیر آنجا نیومد اما می چی میگن لاکنا موقیدتون به عدم قیام الحجج من او اصل الاخلاف او اگه هو حجتی بر خلاف قائم شد چی میشه فان قامت الحجج الاخلافات تبدل از ثقر اقامت علی الحجج و الا تبدل احکام واقعی رخ میده خب پاسخش یک مخالف زواهر عدل است دو مخالف ادله اشتراک عالم و جاهله یه سلوات دیگه مرحبت بفرمونی خب پس ما الان با این مقدمه ای که تیتر جدایشان نزده بودن ادامه این بحث شموله برای عالم و جاهله بورده بودن عملا بحث تصویبم، تصویب و تخت جمله ورود فرمودند. خب یه بحثی هم که به این مربوطه، بحث حکم واقعی و ظاهریه. گفتیم حکم واقعی باید مد در علم ما درست تبلور پیدا کنه. خب یه جایی مجتهد یه حکم ظاهری هم قائل شده. ما گفتیم خطاپذیریم خب این یه معنا، ممکن اونی که ما به دست میاریم با ادله اجتهادی و اینجا ما یه تعبیر مقدمی هم نیاز داریم. ادله اجتهادی و ادله فقهاتی عدله اجتهادی کوشش میکنن احکام رو به نحو واقعی به ما بدن امارات اماره لسانش لسان واقع نماه درسته؟ اما اصول عملیه لسان واقع نما نداره البته اون جایی که محرزه هست مثل استصحاب که اختلافی هم هست بعضی گفتن جز اماراته اون حالا فعر میکنه ولی فیل جمله عدله اصول عملیه یا عدله فقاهتی لسان واقع نما ندارند لذا فقط میگن یه حکم ظاهری من با شما جل میکنم خب جل میکنه واقعا شعاره جعل کرده پس این مقدمه رو بگیم حکم واقعی در موضوع شک اخس نشده حکم ظاهری در موضوع شک اخس شده به تعبیر دیگه که اشاره کردیم این از خود خارج از کتاب میگیم لسان عدله اجتهادی چیه؟ واقع لسان لسان عدله فقاهتی یا اصول عملیه چیه؟ واقع نما نیست یعنی بیان حکم ب... یعنی صرفاً بیان حکم ظاهری می کند اینه چون رو عرض کردیم چون که اونجایی هم که عدل اشتهادی ما به دست ممکن ممکنه اشتباه کرده باشیم اونجا هم به یک معنی اون عدل ظاهری ها این الان حالا یه بس دیگه هست. که به اون ادله ای هم که ما الان به دست بردیم چون که خطا پذیره به اون هم بگیم ظاهری اون یه حرف دیگه هست. ولی چون که لسان لسان واقع نماست میگیم که لزم میگوییم ادله اشتها حکم واقعی به ما می‌دهند. اینو برای این مقدمه ارز کردیم یه باره بی مقدمه نرفته باشیم سراغ بحث حکم واقعی این الحکم الواقعی و ظاهری ظاهری الان تکیه از که بحث اون رو ادله ظاهری لسان اینها خب این یه نکته لا بلا اشان که در ادامه میان یه بحث کوتاه اشاره می‌کنن خیلی کوتاه. یه مسئله نمود احکام واقعی بحث میکنن بعد بحث سقل اصلی بحث میره سراغ بحث احکام ظاهریه در بحث عدل واقعی چی میفرماین؟ میگن که ما قبلا عرض کردیم در حلقه ثانیه که عناصره مختلفی برای احکام واقعی مورد نیاز ما است به یه تعبیر عناصر مرحله ثبوت و جل مرحله ثبوت س... یعنی چی یعنی عالم جلب وقتی میگیم دو مقام بحث میکنه مقام ثبوت ثبوت یعنی عالم جلب مقام بات یعنی بیان و ابراز و بعد استدلال ما در عالم ثبوت قبل از اینکه حکم به ما برسه احکام واقعی سه مقام سه تا مرحله داره سه مرحله بعد بگذرانه یک ملاک داشته باشه بعد اراده شده باشه بعد اعتبار شده باشه البته این به این لسان دیگه هم میشه بگیم که در جای دیگه اومده اول بعد نه حب مصلحت ای باشه به عنوان ملاک ملاک یعنی مصلحت مفسده یه معنی خاص یه معنی عام ملاک هم به همه اینا گفته میشه اینجا به معنی خاصه مراد مصلحت مفسده است بعد حب و بغض بیا بعد اراده و کراهتی بشه بعضی اینجوری تقریر میکنن قبل از انشاء حب مست مرحله داریم در ضمن بدانی مفهوم آخوند خراسانی آمدن فرمودن احکام چار قسمند و چهار معنام بعد بعد یا اومدن مناقشه کردن این چهار تا چهار قفن نیست چرا چون بعضیش جزء مبادیشه لذا بعد آمدن یه تعبیر دیگه شبیه این به کار بردن مثلا مبادی حکم مثل مصلحت مقتضا و اراده و کراهت و حب و بغز. اول مصلحت مقتضایی هست بعد فرض کن شما مصلحت مقتضا رو بینید یه حب و بغض پیدا می‌کنید بعد اراده کنید اینجا یه مقدار تعبیرش فرق می‌کنه این برای مقایسه گفتن که با جای دیگه دیدین قاطی نشه اینجا اول باید ملاکی باشه مفضلت مفسدی باشه بعد ارادش میکنید بعضیت به جای مرحله گفتن چی میگن حب و بخ مرحله سوم میگن اراده ایشان گفتن اعتبار بعد تذکر میدن در اوند اعتبار میگن آقا این انصور یه جوری انصور اساسی نیست بعد یه نتیجه میگرن انصور اساسی نیست پس به چه درد میخوره به درد سیاقت و بیان می خوره. تعبیرشان تنظیم و سیاقته بعد داخل پرانتز گذاشتم با... یعنی جنبه بیانی دارد از توضیح بعدی معلوم میشه یعنی تا اینجا تنظیم و بیان با... یعنی این پس آقا اساسی نیسته اگه میخواد حکم شک بگیره باید ملاک باشه بعد اراده اشاره اما چرا این سومیه میاریم چون که با این مقدمه میگن آقا هم طور که میدونید نظری حق اطاعت ما داریم، شار حق اطاعت داره برگردن شما، یه حق دیگه هم داره. وقتی حق اطاعت داره، حق هم داره مشخص کنید بعد از چه چیزی اطاعت کنید؟ مرکز و مثب به اراده هم حق داره معلوم کنه دیگه. بگه آقا من اینو خوام و یه نتیجه داره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که گاهی اوقات ممکنه همونی که اراده کرده، اونو امر بهش نکنه. به مقدمش امر کنه لذا این عنصر بس غیر ضروری این اعتبار اعتبار یعنی چی؟ یعنی خود اون رو که اراده کرده لازم نیست همون رو اعتبار کنه پس این عنصر ضروری نیست به این معنا یعنی اراده عین همون در واقع خود اون اراده رو به صورت اینی لازم نیست در قالب حکم اعتبار کنه میتوانه یه تغییر بده اراده کرده شما برید بالا پشتبان ولی به مقدمش دستور بده این همون اراده حکر جل نکن به این معنی پس ضروری نیست یعنی میتواند یه لسان دیگه با یه جور دیگه حکر رو جلب بفرماید به تعبیر احسنتون خود واجب واجب نمیکنه مثلا مثلا بله. همینطور البته این تذکر رو بدیم که بحث وجوب مقدمه یه چیز دیگه است دا. اونجا تو اون بحث ما الان از این پایین داریم به وجوب مقدمه و ذلمقدمهش نگاه میکنیم تو بحث مستقل ملازمه تعقلی با بحث مقدمات که کاردیم اونجا بحث از اون طرفه میگیم آقا شاره به, مقد... به مقدمه امر کرده آیا ما میتوانیم کشف کنیم مقدممن واجبه یا نه عقلا یا فقط یه شرعن یا فقط عقلیه اونجا تو اون بحث ملازمه عقلی از اون طرف نگاه می‌کنن الان بحث ما اون نیست میخوام میگم آقا شاره اراده کرده شما برید پشتبان آیا حتما لازمه که بگه برو پشتبان یا میتوان اینجور نگه فقط به مقدمش امر کنه مگه اطاعت مال خود اون نیست خود اون هم حق داره حق اطاعت که داره حق داره خودش مشخص کنه این و اون رو به شما امر نکنه به مقدمش امر کنه و به تعبیر دیگه اینجا تعبیر مصب که داره من دارم آوردم که مصب یعنی مرکز مصب به حق اطاعت خود قرض باشه یا ارا... یا مقدمش لذا گاه مس... این تعبیر رو دارن گاه با مسبب به اراده، مسبب به انصر اعتبار، گاه با مسبب به اراده وحدت پیدا میکنه گاه تغایر پس قدمر رو بنا این مرحلت و ثبوت تشته منالا سلاس اناسور بله لا بس من کذال همونطور که حق طاعت داره کما ان الله وحق الطاعه المكلف كذلك لو حق تحديد مرکز حق طاعه فی حالات اراده شیئا پس لست ضرورین که خلاصا همون رو بگم ولی ممکن و یج المقدمه ذلک شیء لتی یعلم المولى بانهم موادیه الیهو فی اوده المكلف یه چیز دیگه رو اعتبار کنه همون که اراده کرده تو جل نیاره و هذا یعنی ان حق الطاعه ینسب یعنی منصف میشه میره زن علما یا حتی دو هول مولا این داره ارادتی یه کامی شویند مساب بن له و یادخلوه فی آتیم کن ول اثبار هوال لذی استخدم عادتان ول اثبار هوال لذی استخدم عادتان لکش به عن ال مساب بلذه عین مولا ما اعتبار اشاره رو که نگاه میکنیم از این لسان اثبار میتوانیم بفهمیم آقا یه چیز دیگر رو شعر اراده کنه نه اینه اون لفظی که دل لسانه جعل آمده فقط یت و من مصب به ارادتی و قد یت البته حالا میتوانه کم و زیاد باشه مسئله بعدی که با تیتر نداره اینم هم تیتر نداشت در ادامه این بود خب یه مسئله این پس مربوط به اون شق اول حکم واقعی در مده حکم ظاهری هم با یه سلواتی بریم مسئله بعدی عدله من تیترین زدم عدله استحاله جعل احکام ظاهری آقا بعضی آمدن فرمودن که اصلا جعل حکم ظاهری نمیشه شارع بکنه مگه حکم واقعی نداره آخه معنا داره شارعه یه حکمی داشته باشه بعد بیا خلافش جعل کنه شما که میگید اصول عملیه یا مثلا یه جای حکم خلافش در بیا خب آقا اگر حکم یکی اشاره مگه یک نگفتید آل مجاهلم تو اشتراک داره همون حکم واقعیه گردن جاهلم هست الان شما جهلن مثلا به حکم رسیدید آیا معنا داره شاره این حکم رو در حقش جعل کردوشین که تناقض میشه تضاد میشه اسم اینو این موضوع شپه تضاد خب که بعدا تیتر به این به همین وقتی به این شبهات دو سه تا شپه میارن به شواهد که میخوان در تیتر اینجوری بزنن شبهه تزاد و نقل القرض این لذا که زیرش خط اینجا خلاصه تیجهی که بعدان خودشون گذاشتن اینجا میگن آقا شبه اول گفتن آقا یا مستلزم اجتماع زدین میشه یا اجتماع مثلن میشه اگه حکمی واقعا وجود داره در با اون حکم واقعی تقایر اگه پیدا کنه میشه اجتماع زدین معنی نداره شاری. یک که شما میگید واقعیه جعل کرده بعد شاری یه بار دیگه وقتی که جعل کرده باشه به با عنوان حکم ظاهری که مخالف اون باشه پس رد اجتماعاً اگر هم مثل اون باشه این حکم ظاهریه احتمالاً این دیگه مثل اون اگه باشه خب میشه اجتماع مثل این فعل جمله جواب‌های مختلفی داده شده یکی در حدیه یه پاراگراف اشاره به بدون که اسم شیخ رو ببرن اشاره به نقد ببخشید به پاسخ مرحوم شیخ انصاری میکنن شیخ انصاری چی فرمودن فرمودن که آقا این دو تا سنخشان فرق میکنه یکیش واقعی یکیش ظاهریه همین که سنخشان فرق میکنه و ما غیر سابقا من اناولا تنافیه با این الحکم الباقی وزای لانهما سنخان میگه آقا من قبول نمیکنم شهیستت میگه آقا این صرف اسم گذاریه، یه پاسخ سوریه با صرف اسمگذاری که تضاد برداشته نمیشه اون واقعی بودی ظاهری این ای اسمشه موتعوج این بود که آیا شاره خلاف حکم خودش عمل کنه یا جهل دیگه بکنه این که تناقض میشه با صحت ربوبیت جور در نمیاد مجرد کلام سوری این پاسخه و ماقیل مجرد و کلام سوری اذ لم یؤتم مضموناً حرف درست درمان به ما نمیده لند مجرد تصمیمات حازم الواقع و حازم زای لا یخرج من کون و ما حکم می دراکون تکلیف بهمون که متزاد دهون مشکل حل کن شما خب شبهه دوم یا عزیز دیگه میاد همون مسئله رو میگه آقا شما میگی خلاف حرف واقعیش بگه یه حکم جهل فرموده وجوب صلات حالا بیا بگه که نه صلات واجب نیست خب که گفتیم خلاف در میان مستلزم نقد قضیه مست سه تا چیزی که حالا تیتر خلاصه میذاریم دو سه تا چیز شبیه همه میشه بگیم می که مخالفت با حکم ظاهری باج از طریق جهل واقعی از طریق جله حکم ظاهری این نقض مستلزم نقض قرز مولا قرزش چی بود؟ اون حکم واقعیه رو شما باید بری انجام بدید حالا یه حکم خلاف اون بذاره یه خلاف شد نقض قرز میشه تعبیر دیگه این در واقع اون مراتب حکمی که گفتیم این نقضه و عادت به در واقع به اون مرحله دوم و سوم میگه ارادش این بوده خلاف ارادش یه مرحله قبلا هم میشه بگیم فلان موضوع مقصد مصلحت داشت الان این ز میشه مقصد آمیزه و تفید کننده مساله واقعیه پس اون مثلا اون ملاکی که بود هم خلاف ملاکش داره در میاد هم خلاف اراده اشاره اراده اشاره حکم واقعی بود الان اراده رو یه اراده دیگه بکنه نقض قرارداد میشه اگه بگیم که در واقع ببینیم اون اشکال قبل ما مبادی حکم مثلا اگر بگیم یه حکمی داریم سه مرحله قبلشه اون تعبیری که تو کتاب نمد یه ذره کمک به این قسمت میکنه یه مرحله یه مصلحت مفسده داریم خب آقا این جعل حکم ظاهری نتیجه چی میشه اون مصلحت مفسده رو خراب کرد مفسده آمیز تفریق کننده مصلحت است مرحله دوم خب ببغض داریم و بعد اراده خب اینم میشه اضافه کنیم آقا اگر شار نسبت به این موضوع حب وبغض پیدا کرده بر اساس مصلحت ذاتی خب این الان خلافم حب وبغض پیش میاد دیگه ای داره اگه بگید اراده کرده نقد و قرضش میشه باید یه اراده دیگه کرده باشه این پاسخ قبلی به کجا برگشت به اعتبار به قول شعی میگه الان یه چیز رو اعتبار کرده یه حکمی رو انشاء فرموده از ترتیب بعد می‌شد اینا برعکس بکنیم اول از خوب و از مقصد مثلت مسئله شروع کنیم بگیم آقا اولاً مقتضیه این که مسألت مسئله قبلی خراب بشه سانیان خوب و بوغزه که دیگه شانشا نکردن مخالف اون خوب و بوغزه قبلی باشه یه خوب و بوغزه جدید بعد حاصل بشه تناقض میشه مرحله بعد اراده مولا است خب اراده مولا شد نقض قرارداد یه اراده کرد حالا یه اراده دیگه بعد از اون نوبت به اون اجتماع ذهن میرسه خب آقا نتیجه چیه چاره جلی کرده یه جلی مخالفش کنه نمیشه بپذیریم. خب این شبه دوم شبه سوم میفرماید آقا خب یه نقطه هم عرض کنم مبادی چه، سه مرحله قبل از حکم انشای حکم گفتیم بعد از انشای حکم دو سا مرحله داریم ابراز حکم درسته بعد ای ابراز و ایسال بعد برسته به تنجز و بعد امتصال این اشکال آخریه به اون آخر برمی‌گرده تنجوز البته حضرت امام به چی میگن همون که ابراز شده باشه اسمش رو حکم فعلی ولی مثلا مرحوم نایینی نا این, این مرحله میگن که بیان و ایصال و فعلیت میشه و مرحله بعد اگه موضوع باشه تحقق پیدا کردنش ولی این وسط میشه تنجوز الان این اشکاله به تنجوز خورد اشکال سوم سو میگه آقا شما یه علم دیگه دارید یه واقعیت یا یه علم دیگه پس تنج... تو مرحله تنجز اینجا واقع مشکوک است محال از حکم ظاهری منجز حکم واقعی مشکوک باشه تنجز مال دوستان مرحله بعد از حکمه و بعد از حکم باید بیان بشه ایصال بشه بعد من اگر... من اگر علم داشتم تنجز پیدا کنه خب میگه آقا این حکم الان حکم ظاهره به شما رسیده این منجزه منجزه چی چیه منجزه اون حکم واقعی یا منجزه حکم مشکوکه حکم ظاهری است نمیشه اگر بخوام مصحح باشم این مصحح بودن متحه... آیا اگر اون حکم واقعی تخلف کنی عقابی می آیه آیا مستحق عقاب میشه حکم واقعی گردن شماست این حکم منجز این حکم منجز چی چیه منجز اون واقعی هست آیا مسحه بر اون قبلی است نمیشه بلا تکلیف هست خب وارد شپه که دو تا این شپه بشیم ما حالا دیگه خیلی دیگه کشش ندیم این تعبیرم من عرض کنم تو مقام تقریر وی و اما لحکام و ظاهریه مسار لبحث واسه و, و جهت فیه عدت و اعتراضات للقم زاری تو برحن علا استحالت جعلهی عقلیان رو عقلیان تاکید زیاد نکردی استطلال عقلی داریم شه و یه ممکن تلخیص حاضل برانی فی مایلی یک جعل نجعل زاری یو ادیل اجتماعی زدن لأن الحكم الواقعي ثابتون في فرض شک به حکم قاعده الاشتراك المتقدمه گفتیم اشتراک داریم ولی اینجا زیرا مشکل ایجاد میشه و حين اذا فان كان الحكم الظاهري المجهول على الشك على الشاك مغایرن للحكم الواقعي نوعا لزوم اجتماع المثل اگرم موافق باشه لازم اجتماعی مثلن خب اشکال دوم ان حکم الظاهری اسمش گذاشیم شبهه نقض غرض ویالا مفزدون اینا هم میشه انال حکم ظاهری ازا خالف الحکم الواقعی و انال حکم الواقعی به مبادعهی محفوظن فیاز الفرض به حکم قاعد تلشترکان اون مقدمه که تو بحث قبلی بود قراره بقا اون بحث قبلی سمره داشته بشه قراره گردن همه باشه خب اگر این گونه است که حکم واقعی گردن همه رو گرفته عالم و جاهل اینجا این حکم ظاهریه چیه؟ مستلزم نقض غرض یلزم من جعل الحكم الظاهری فی حاصله حالا نقض المولا لغرض الباقی بسماح للمکلف باید خود مولا اجازه میده شما قالبش عمل کنیم اگه با حکم و مشروع باید اجازه میده شما اونو تفید کنی اجازه میده اونو تفید کنی خب میشه تناقض در عمل در غرض مولا تف... اعتماداً عل الحکم فی حالات عدم تطابق مال واقعو خلاف واقع, واقع درآمده شما حالا اجازه بدید بگید که شوره اجازه داده خب تناقض به شاره برمیگرده شما اراده کردی یا دارده؟ نفر بودید و خب یعنی الغاء المكلف المقصده شاره اجازه بده اون حکم مصلحتی مسل... داشته بلکه مثلا مس... در واجبات مسلحت لزومی داشته در مستحبات مصلحت مس... غیر لزومی داشته ولی اشاره اجازه بده اون مسلحت خراب بشه مکلف بیفته در مفسده و تفیید و المثال الواقع المهمه اون مسلحتی هم که رایت قرار بشه اونم هدر بشه تفید بشه اشکال ثبت هم اشکال تنجز واقع مشکوک می فرماید انال حکمت ظاهری منال مستحیل یکونه منجزن لتکلیف الواقع المشکوک این قرار منجز بشه منجز چی؟ اون حکم مشکوکه از اون طرف این قرار مصحح اقاب باشه مستحه اقاب و مستحه هن که مصحح للعقاب الان مخالفت الواقع باشه چرا؟ لان الواقع لایخ يخ... لا راج انکونه این مشکوک الان یه اماره آمده یه اصلی آمده که تکلیف رو اثبات کرده اینجا نتیجه چی میشه؟ او یه ای داریم یه من تو توضیحات جزیش نایی این برشق شق سوم. اصل قبع اقاب بلا بیان بنابرای قائل نظر قائلین اینجا سرخ پیدا میکنه و معهو اینجا الواقع لا راجن کنه مشکوکن و بعد ما از اون طرف بیان داریم و معهو یشمول و حکم العقل به قبل عقاب بلای بیان عقل میگه که آقا اگر بیانی نیست عقاب قبیه بر نظر به قائلین به این مسلک ول احکام العقل غیر رو قابلات لتخصیص عقل رو که نمیشه حکمش رو ما تخصیص بزنیم بگیم که اینجا این نظر رو بذاریم کنار قپه عقابله ولی اینجا عقاب نداره در اینجا حکم ظاهری وجود داره خلافونه نه اینو ما نمیتوانیم بپذیریم حکم آیا میتونه که منجز حکم واقعی مشکوک باشه نه محاله آیا میتونه مصحح عقاب بر مخالفتش باشه نه نمیتونه پس محاله خب اینجا اون شبهه تضاد این رو پاسخی که مرحوم نائینی به این بحث داده ایشان میفرماند آقا دو تا مقدمه رو هم آوردند یکی کمی شاید بشه جداش بکنیم میگن اون بحثه پس اشکال اول چی بود اشکال اول تضاد بود گفتیم که اگر بخوایم به این تن بدیم حکم ظاهری این حکم ظاهری اگه مخالفت در پیدا بکنه میشه تضاد اجتماز میشه میفرمایند که مرحوم ناینی میفرماند آقا این حرف نزنید چرا چون این حرف مبناییه فقط طبق حرف مرحوم شیخ درست در میاد مگه حرف شیخ چی بود حرف شیخ یه تعبیر اضافه کنم ما اینجا کلا دو تا پیش فرض داریم یه پیش فرضش اینه که حکم ظاهری اینجا حکم تکلیفیه پیشفرز فرض دومم پیش فرض نظر شیخ نظر شیخ در بحث معنای جل چی بود؟ سه چهار تا اپنا داریم در بحث جل یکی این که نظره مماثلت جل حکم مماثل می کند حکم ظاهری و از این باب حجت است که حکم ظاهری حکم مماثل است. این نظر شیخ الان مرحوم ناینی میخوان بگن که جواب, جواب میدن میگن آقا فرمایش این اشکال اول اشکال شپه تضاد مستلزم اجتماع ضدینه میگه علل مبنوس علو مبنوی که طبق مبنوی شیخ انصاریه منتها فقط این یک مقدمه نداره دو تا مقدمه میگه آقا مص... خ... این, خ... این حرف اشکال داره خطاش در این دو پیشفرض دو تا پیشفرض پشت سر هم میارن نشون یک تکلیفی بودن حکم ظاهری دو تا که ثقل بحثش اون روینه نظر آقا این حرف طبق حرف و مبنای مرحوم شیخه در بحث حجیت مگه حرفشان چیه مگه چندتا تا مبناه داریم در حجیت یه مبنا جعل مماسل نظر شیخ که این حرف طبقونه مبنای دیگه منجزیت نظر آخوند نظر دیگه طریقیت خب که حرف مرحوم راینیه را میگه طبق این مبنای طریقیت مشکل ایجاد نمیشه چرا طبق مبنی ش... شیخ چرا اشکالی جات میشه؟ میگه آقا چون که شما فرمودی جل حکم مماسل می شود از طریق این حکم ظاهری اشکالی جات میشه شما می یا این حکم ظاهریه یعنی حکم ظاهری در عرض حکم واقعی قرار گرفت طبق مبنای شیخ طبق مبنای شیخ یا حکم واقعی داریم این حکم ظاهری هم مماسل اونه در عرض اونه بعد وقت شما میگید آها چ... نه. یا تضاد داره حاصل میشه اجتماع زدن میشه یا حکم مماسل میشه یا اجتماع مثلی میشه اگه مخالف باشه چگونه مخالف بشه اگه مثل باشه چگونه مثل باشه میگه بابا این علل مبناه مبنای شیخ بود که جل میگفت حجیت به این از که جل حکم مماسل باشد ما اینه قبول نداریم خب ما زکره و المحقق و ناینی من انل اشکال تزاد نشه من افتراز انل حکم ظاهری حکم تکلیفی این پیشورز اول و انه پیشورز و و حجت خبر سقه مثلا معنا و جعل حکم تکلیفی یطابق ما اخبران هستقه من احکام و هو ما ما به جعل الحکم المماثل خب پس این علل مبناست مبنای اول این بود که مرحوم شیخ فرموده یک این حکم ظاهری شنه چیه مثلا در خبر سقه میگه که ما اخبار حسقم میشه مماسل حکم واقعی این چرا حجت از خبر سقه میگه چون که این خبری مطابق با حکم واقعی میاره و این اسمش چی میشه جله حکم مماسل این خبره این چرا حجت است چون که این یه حکم ظاهری درست میکنه به واسه حکم مماسل درست میکنه برو و این اخ بوجوب به وكان حراما و کان فی الواقع طبق این مبنای شیخ این قرمت واقعی داره ولی این میگه واجبه تمثلت حجیت و, و حوفی جل وجوب ظاهری میگه آقا این اصلا حکم ظاهری درست میکنه پس مشکل حل نافی حکم واقعی نیست اصلا اشکال نداره اشکال ما این بود که آقا این واقع نوما نیست نداریم حکم ظاهریه خود حکم ظاهری اصلا حجته وفقن لما اخبره اساس اجتماع زدن بله تو اینجا اجتماع زدن پیش میام اونجایی که مخالف بود خب ولی ما این قبول نداریم نظریه درست چیه؟ که نظر مرحوم ناینیه در واقع مرحوم نظر نظریه ناینیه اینه که جعل علمیت و میکنه و منجزیت و به تعبیر دیگه مثلک جعل آقا آقایی اصلا طریق این حکمی که این مثلا اگه خب قطعی باشه خب واقع نمائیش کامله اما اگر حکم نقص داشته باشه مثلا اماره اماره بیانش زنیه یه جور تطمیم کشفش میکنه آره کاشفیتش ناقص بود اونجایی که, حک... اونجای که یک چیز قطعی داریم دلالت قطعی داره دلالتش تا متمامه اما اونجایی که گیر داره نقص داره اماره زنی داره یک هفتاد درصد داره بیان میکنه واقع نمایش هفت درصده خب شار اینو اتمامش میکنه طریقیتش رو تا متمام میکنه یعنی چی؟ میگه آقا این منجزه این اصلا علمه درسته این زن بود 70 درصدی، نوت درصدی، هشت درصدی بود اعتبارش هشت درصدی بود من اعتبارشو تانمو تمام میکنم پس منجزه پس طبق این مبنا این اصلا نمیخوام که این محتوش همینه که شما که بعد به اون درد مبتلا بشیم به اون تالی فاسد مبتلا بشیم میگه این منجزه اینو من قبول دارم به مسابهیه درصد این اماره رو قبول میکنم این نا... ناقص رو کامل می کنم، این زن 80 درصد دیر رو من علم تمام حساب میکنم این رو منجز قرار میدم و به تعبیل دیگه این این مسلک جهل طریقیته ولکن نلفتراز دلمسکول خط اندن نسای اندن معناهجیت خبر استقه مثلا جهل و علمن و کاشفن تاممن مسلک تطمیم کشفه کشف رو تام میکنه یعنی میگه ای بنده من من قبول میکن چی قبول میکنی؟ این ناقص بود؟ زن بود؟ نگه نداره اعتبار دیگه میگه من در حق تو در حد علم حسابش میکنم از این باب امارات رو من مثل علم واقع نما حساب میکنم صد درصد بله خودش نود در درصدی کاشفیت داشت من کشف تام حسابش میکنم جل و علمن پس جل علمیت میکنه تطمیم کشف میکنه پس جل علمیته کاشفن تامن ام معدوم بل اعتبار اعتبارن مثل در واقع جل علمیت و منجزیت از طریق اعتبار به تعبیر دیگه اسمه نمیزداریم چیه مسلک جل طریقیت طریقیت و کاشفیت باید تام بود ناقص تطمیم کشف میکنیم فلا یوجد حکم تکلیفیون اون ظاهری اون زایدن حکم تکلیفی الواقعی یه چیز جدیدی هستن نیست این همونه طبق مبنای قبلی اصلا حکم جدیدی بود برمان حکم مماسل، اصلا دو تا حکم بود پس تعبیر دیگه چجوری رفع اشکال میکنه اونجا دو حکمی بود اینجا اصلا دو حکم نداره همونه من قبولش میکنم دیگه اون ناقصه رو کامل حساب کن من حکم جدید جعل نکردم تعبیر دیگه خلاصه قبلی چی بود به تعبیر دیگه دیگر, دیگر. جعل حکم جدید است اینجا چی؟ جعل حکم جدید نیست پذیرش و اعتبار بخشی به همون حکم واقعیه زنی بود. درست؟ این تعبیر کلیدی خوبیه. فعلاً یه زا حکم حکمت تکلیفیون ظاهریون، زا الان حکم تکلیفیل واقع. اصلاً حکمت جدیدی نیست. لیل زم اجتماع حکمین، زیچ حکم. دو تا حکم نیست که اجتماع حکمی تکلیفیه متعددن. و زوال کل لمنال مقصود من جعل الهد، جعل الخبر مثلاً جعلو منججان. گفته همون حکمی که از اما فهمیدی اونا قبول میکنن منجزه گردن تو هست باید انجامش بدی اگر انجام ندی چی عقاب میاد همون عقاب جدید نیست اون تابیر مصح حالا تو فضای دیگه یعنی موسح همونه و ها کذا یه سال به جلی علمم و بیانم تامم اون بیان ناقص بیان تبدیل میشه به بیان تام و این حکم دوتا نمیشه لأن علم منجزون سوان کنه علمه حقیقتن کلقه او علمه با حکم شاره شاره اعتبارن اینه کرد علم جعله علمیت کرد براش که واقع علمی زن من قبول میکنم بحق. او علمه با حکم شاره کل اماره پس اماره شد مثل علم و حاضا مایسم ما به مثل که جعله طریقیه بعد مرحوم شیخ مرحوم شیستت به تذکر قبلش بدم مرحوم آقای خوئی تر اینه که داخل کروشه گذاشتم یعنی داخل کتاب نیست مرحوم آقای خویی که شاگرد مرحوم ناینی این تذکر دلتر مدنم مرحوم ناینی یه مقدار مرموجه مکتب شیخ انصاریه، شیخ انساری یه جهشی در اصول رو انداخته خیلی مبایسی رو انداخته در فقه و اصول که قبل نبوده بعد انقلتایی به طور طبیعی وارد شده و خیلی از بحثایی که ایشان دارن لزومن از استادش هم ممکن سر سرخطه اونجا گرفته باشه ولی خودش من از صاحب زوابط و اینا خیلی نگرفته بحث صاحب زوابط بحثش آمده از صاحب جواهر بحثش آمده مثلا یه مثال خارج از اینجا بگم مثلا مفهوم تزاهم و تعارض فرقش اصلا کلمه تزاهم علمای قبل به کار نمی بردن اگرم به کار می بردن من سرچ کردم من قبلی اصلا مرحوم صاحب جوار هفت بار کلمه تضام رو در جواهر به اون طول تفصیلی به کار برده صاحب زوابط هم که تقریرش در زوابطول سو شاگردشان تقریر شده نیامده ولی چه خانساری این مفهوم تضام رو رو انداخت و خیلی ابتکارهای دیگه خب شای خانساری یه محقه برجسه یه باره یه جههشی ایجاد کرده بعد یا مرحوم علمای دیگه اومدن نقد و بررسی کردن تو این بزرگوارم مرحوم ناینی یه مقدار مروج و دهنده و مدافع شیخ خیلی مسلط و حرفاشونو بالوپَر دو دفاع کرد و یه تقریر قشنگی داده خب مرحوم آقای خویی هم یه جور استمرار مرحوم آقای آقایون دیگه مثلا مرحوم آقا زیائنا حاشیه برایشان ایشان دادن مؤثر بود و هم زده دیگه مثلا بعضی بزرگانی هم که در قم از نجف تشرف وردن، بسره رو استمرار رو نن. مثلا علی وحید و کسای دیگه. شهید صدر یه مقدار بینابن. مثلا مرحوم آقا زیاد دیگه خیلی اینجوری نیست. آقای این دیگه این مقدار مشایخشون فرم میکنه. حضرت امام و اینا با تبعین و اساتیدشان. اونها میگن مشایخشون فرق میکنه. ولی مرحوم آقای خویی که داره میگیم استمرار منو نایینی و بعد ولی آقای خویی در اینجا مطلق این حرف رو نپذیرفتن. در اگر بح دو سه تا بحث که بگیم ما یکی مثلا در بحث امارات در امارات و اصول عملی تنزیلی ایشان پذیرفته اما در اصول عملی غیر تنزیلی آقای خویی نپذیرفته این نظر رو چی فرمودید؟ این صدا ضعیف میبونید کلرم هست؟ بله بله همین نظر جعل طریق آقای خوی این نظر را یعنی ده ده. بله این نظر یعنی نظریه جعل تطمیم کشف تعبیر تطمیم کشف تو اینجا نایمده ولی کمک میکنه تو ذهن شما این جعلن کاشف این و به تعبیر دیگه این تعبیر بالا چی ارز کردیم جعل طریقیت در واقع طریقیت نیم یه طریقیت گویان گویا نیست چون که خودش طریقیت داشت این طریقتو تطمیم کرد لذا اینجا که گفتن مصلکه آخرش گفتن که طریق طریقیت با ما به مصلکه جعل طریقیه یه تعبیری قشنگ‌ترش تطمیم کش به تطمیم طریقه ترقی. طریقیتی داشت در واقع جعل طریقیت تا من باید بگیم خب این نظر مرحوم شیخ شهست... آیه خویی که ایشان استاد آیه رم هست خب شیخ صد چی شیخ صد اینو قبول نمی‌کنه می‌فرماید آقا این مناقشه بکنیم این تضادی که آمد صرفاً بر اساس اعتبار این دوتا نیست پایه بس صرفاً این نیست تا با تغییر اعتبار رفع مشکل کنید شما بعد چیکار کردید رفع تغییر اعتبار دادید در این پاسخ تغییر اعتبار انجام گرفت که کافی نیست زیرا ایشان می که آقا ترزادلی که پیش آمد به خاطر اعتبار این دوتا نبود بلکه به خاطر مبادی حکم بود که این اعتبار پاشفه اون تبیر اعتبار که تون بست سبوتی رو الان کمک میکنه اونجا فرمودن چی؟ تکه آخرش گفتن از اعتبار ما کمک میکنیم کشف بکنیم اراده رو بفهمیم می فرماید آقا. اینجا این تناقضه صرفا به خاطر این نیست اون تقریر که بالا کردیم گفتیم اقا این مبادی به چی برمی این نغذ غرز و مفسده و تفیمت مفسده. اینا جلوتره اینجا این ترزاد خود حکم بود اون طبقه اون مرحله بندی که من کردم هفت قسمت کردم گفتم یه مرحله حکم بگیرید سه مرحله قبلش اون چیه مفسد مفسده یا ملاک بعد حب و بغض و اراده این انشاء و اعتباره این کاشف از اون قبلی است. خب آقا این مستلزم جل زدن اون مرحل خود اعتبار است خود جل حکمت فقط این نیست که دو سه مرحل قبلش هم هست اونجا مشکل به وجود آمده که اینجا مشکل حاصل شده شما اونجا رو حل بکن بلکه به لحاظ این تضاد به اعتبار چیه؟ به لحاظ مبادی حکم رو شما درست کن خب لذا نتیجه چی؟ در فرض حصول حکم س... ببینیم این حکم ظاهری از کجا ناشی شده تعبیر نشأت و اینا رو داره ناشی شدن تنشای و اینا رو داره من تعبیر تنشای نگوردم بف... تبیر جایش گفتم در فرض حس... دوتا فرض یکی این که این مسلحته از این بخش این حکم ذاریه اگر از مصلحت ملزمت ناشی شده باشه این تلازم این تنافی هنوز باقیه اگه مصلحت مقتضی یکم وجوب بود این الان میشه فرمت خب این تنافی هنوز باقیه اون مبادیش تنافی داره این حکم صوری که نمیشه اسمش هم بزنیم اقا حکم ظاهری این حکم از بودن الان تنافیه به خاطر اون مصلحته بود مصلحت مقصده الان تنافی در باقیه پس این حل نشد اگرم نه فرض دوم میگه آقا در مستباط مکروهات حالا مصلحت ملزمه نبود اینجا چی اینجا بله تنافی ظاهر میشه چه طبق مبنای شما چه طبق مبنای چه چه طبق مبنای مرحوم آقای خویی اون مبنای قبلی در هر دو صورت اگر مسلحت ملزمه ناشت علت بود تنافی باقی مانه اما اگر حاصل از مسلحت مل... ملزمه نیست و از غیر ملزمه این هاست یا تصاوی مسلحت مفسده این تنافی زاهل میشه چرا؟ چون دوتا مشکل نداره مسلحت مل... ملزمه با غیر ملزمه که اشکال نداره یا تصاویه اینا که مشکل اجاد نمیکنه چه حکم مجبور تکلیفی باشه یا به لسان تاریقی باشه اینجا برگش اون پیشفرز اول که بود ارض کردم گفتن گذاری خیلی استفاده نکردن گفتن الحکم زاری حکم تکلیفیون لا بلای بحث ازش استفاده نکرد اینجا ازش استفاده میکنن میگه چه اون حکم تکلیفی باشه چه به لسان تاریقی باشه این حل میشه چرا؟ چون که مسئلات ملزمه اینجا نبود تا مشکل آفرین باشه ادامه بس ببینیم بعد انشاءالله سلوات و مرمت بفن نه من سلال.